فاطمه قشنگم دختر نازنینم جشن فراغت تو از دوره ابتدایی آغاز جشن ارزشمند دیگه ایه امروز با خدا گام بردار و برای فردا به اون اعتماد کن چشم به راه موفقیت های تو هستیم بدون خیلی خیلی دوستت داریم